سلام شنوندگان عزیز کانال هزار رفسان. امیدوارم حالتون خوب باشه از کتابی که مشخصاتش از شد داستانی را بهتون تقدیم میکنم به نام کارگران زیرزمین در شبی ناجور زمانی بین کریسمس و سال نو مردی سوی دهکده همسایه به راه افتاد خیلی دور نبود اما برف زیادی باریده بود و راه معلوم نبود. دیوار و حساری هم به چشم نمیخورد تا به کمک اونا راه رو پیدا کنه. خلاصه اون خیلی زود گم شد. بالاخره خودشو پشت تنه تنومنده ی درخت ارعر رسوند و اونجا پناه گرفت تا از دست باد در امان بمونه. تصمی گرفت شبا هم اونجا سر کنه. تو فکر بود که با طلوع خورشید میتونه راه و پیدا کنه. اون و زیر خودش جمع کرد، پوست گوسفند و محکم دور خودش کشید و مثل یه جوجه تیقی خودشو گرد و گلوم بکرد و سعی کرد بخوابه. چقدر خوابید؟ من نمیدونم چون که پس از مدتی متوجه شد که یه نفر به آرومی تکونش میده. فرد غریبه گفت مرد خوب، بلند شد. اگه کمی دیگه اینجا بخوابی زیر برف دفن میشی و کسیم نمیفهمه که چه بلایی سرت اومده. مرد خفته آهسته سرشو از زیر پوست گوسفند بیرون ورد و پلکای سنگین چشماشو باز کرد. کنار اون مرد دراز لاغری ایستاده بود که درخت کاج جوونو از خودش بلندتر و تو دست داشت. مرد گفت همراهم هم بیا کمی دورتر از اینجا آتیشی حسابی رو به راه کردیم و بهتر از زیر این درخت میتونی استراحت کنی. مرد خفته منتظر نموند تا دوباره دعوت بشه. پس فورا از جا برخاست و دنبال غریبه افتاد برف با شدت بیشتری میبارید طوری که نمیتونست سه قدم جلوتر از خودشو ببینه از همون فاصله مرد غریبه برای دوستاش دست تکون داد کمی بعد به فضایی باز رسیدن و اون چهره گرم و گداختهی آتشو دید غریبه ناگهان رو برگردوند و پرسید اسمت چیه؟ روستایی گفت اسمم هانسه پسر لونکانس مقابل آتیش سه مرد با جامعه سفید نشسته بودند خزه ها خشک و گیاهها تر و تازه بودند. همه جا پوشیده از علفای شاداب بود و صدای وزوز زنبورا و سوسکای طلایی شنیده می شود. بر فراز این سر و صدا ها پسر لونکانس صدای زوزه باد و پیچش اونو میون شاخ و برگای درخت میشنید. می شنید. باد و سنگینی برف باعث شکست شدن شاخه ها شده بودند قریبه خنده ای سرداد و گفت خب پسر لونکانس اینجا راحت تر نیستی تا پشت درخت ارعر؟ ار و هانس در پاسخ گفت که نمیدونه چگونه از دوستاش که اونا به اونجا آوردن تشکر کنه. پس از صرف نوشیدنی گرم که بدنشونو گرم کرد اونا روی زمین دراز کشیدن. مرد غریبه با دوستاش به زبونی که هانس چیزی از اون نمیفهمید صحبت کرد. اون به حرفاشون گوش داد و کمی بعد به خواب فرو رفت وقتی بیدار شد نه از محل دیشب و نه از آتیش خبری بود اون نمیدونست دونست کجا بود چشمشو مالیدو سعی کرد شب پیش پیشو به یاد بیاره با خودش فکر کرد شاید خواب دیده اما اون چه تو ذهنش قلیان داشت این بود که چگونه به اونجا اومده بود ناگهان صدایی بلند به گوش خورد و احساس کرد که زمین به لرزه در اومده. لحظه ای گوش کرد و سپس تصمیم گرفت که به طرف محل صدا بره. به این امید که آدمی زادی و اونجا ببینه. سرانجام خودشو مقابل دهانه قاری سنگی دید که به نظرش می رسید توی اون آتیش روشنه. درون قار رفت. آتیش بزرگی تو کوره ها زبونه میکشید و گروهی مرد جلو کوره ها ایستاده بودن و در اونها میدمیدن دور هر سندان هفت مرد گرد اومده بودن و چکش ها رو بالا و پایین میبردن. تعداد زیادی آهنگر با ظاهری عجیبون را کار میکردند که اگه تمام دنیا رو میگشتی اون تعداد آهنگر که تو قار بودن نمیتونستی پیدا کنی سرشون بزرگتر از بدن کوچیکشون بود. چکشاشون دو برابر بزرگتر از بدنشون بود. قوی ترین مردای روی زمین نمیتونستن چکشای آهنی اونا رو بلند کنن و با اونا ضربه بزنن. آهنگرای کوچولو پیشبندای چرمی به خودشون بسته بودند که از گردن تا پاشون رو پوشونده بود. این پیشبندا پشت نداشت. روی چارپایی بلند کنار دیوار مردی با چوب دستی از چوب کاج نشسته بود و با دقت و جدیت تمام بر نحوه کار آدم کوچولوها نظارت میکرد. کنار چارپایه سطلی آب قرار داشت که کارگرها هر چند وقت سری به اون می و آب می نوشیدن. مرد بلند قد که دیشب جامعی سفید به تن داشت این بار نیمتنه چرمی سیاهی پوشیده. و کمربند چرمی با سگکای گنده بسته بود. هر با چوب دست به کارگرا علامت می چونکه چون که میونه اون همه سر و صدا حرف زدن فایده ای نداشت. اگه یکی از اونها متوجه حضور فردی غریبه می شد گرم کار خودش بود که ازن توجهی به اون نمی کرد. پس از چند ساعت کار طاقت فرسا زمان استراحت رسید. اونا چکوشا رو روی زمین انداختن و دست جمعی از غار خارج شدن. بعد ارباب از چارپای پایین اومد و به هانس گفت دیدمت که پا به غار گذاشتی. اما در اوج کار بودیم و نمیتونستم با تو صحبت کنم. امروز مهمونمی و نشونت میدم که کجا و چطور زندگی میکنم. کمی سب کن تا این دباسای کسیفو در بیارم. با این سخنا دری رو تو غار باز کرد و از هانس خواست که همراهش بره. آه! چقدر ثروت و گنج اونجا بود. چشمای هانس داشت از هدقه بیرون می زد. شمشای طلا و نقره روی هم چیده شده و چنان برق می زدن که نمی شد نگاهشون کرد. هانس پیش خودش فکر کرد برای تفریح هم که شده اونا رو بشماره. و تازه به شمش پونسد و هفتاد دومین رسید که میزبانش برگشت و با خنده گفت به خودت زحمت نده چونکه که اونا وقت میبره به جاش اگه میتونی چند تا شمش بردار اونا رو به تو هدیه میدم هانس سب نکرد که دوباره به او بگن پس دلا شد تا یه شمش طلا برداره اما هرچی زور زد نتونست اونو با هر دو دست کن بده و فقط باعث افتادنش بر زمین شد. میزبان با خنده گفت عجب، مثل اینکه زور زورت از یک ککم بیشتر نیست. پس بهتره با نگاه کردن به اونا دلتو خوش کنی. اون به هانس گفت که دنبالش بیاد تا اتاقای دیگه رو هم نشونش بده. سرانجام به اتاقی که بزرگتر از یک کلیسا بود رسیدند. اونجا هم پر طلا و نقره بود. هانس از دیدن اون همه ثروت ماتش برده بود. اون فکر میکرد که با اون گنج میتوان همه جهان رو خرید و اضافه اون اونو زیر خاک کرد. اون از راه پرسید: حالا دلیلش چیه که این همه گنج و که فایدهی به حال کسی نداره اینجا گرد آوردی؟ اگه تو دست انسان ها بود، کسی مجبور به کار سخت و جون کندن نمیشد، و تو این دنیا از گرسنگی رنج نمیکشید. مرد قدبلند بلند جواب داد دقیقا به همین دلیله که من این ثروت و اینجا نگهداری می اگه مردم جهان نون روزانشونو با زحمت به دست نیارن جهان زیر و رو میشه با کار و تلاشه که بشر امید پیدا میکنه که خوب و مهربون باشه و با تفاهم زندگی کنه. هانس درباره این سخنان فکر کرد اما بازم از میزبانش خواست تا توضیح بده که فایده این همه طلا نقره برای مردم چیه آیا اون همه ثروت که اونجا تلمبار شده و مالکش همچنان در حال افزایش اوناست و اونا رو تو تموم اتاقش انبار کرده گره ای از گرفتاریای مردم باز میکنه؟ راهنماش جواب داد من واقعا بشر نیستم اگرچه ظاهرم مثل انسان هست، من یکی از اون موجوداتی که مراقبت از این جهان به من سپرده شده. وظیفه من و کارگرام اینه که زیر زمین طلا و نقره به دست بیاریم. مقداری از اون به جهان بالایی راه میابه. اما اونقدر که بتونن کاراشونو با اون سر و سامون بدن. چون که اصل اینه که نابرد رنج گنج میسر نمیشه. ابتدا باید طلا رو از دل زمین دراریم. های طلا با خاک، رس و ماسه آمیخته‌رد. بعد پس از جستجوی طولانی و سخت، به وسیله کسایی که نیکبخت و شکیبا هستند، این شک به دست میاد. خب دوست من، الان وقت شامه. اگه دوست داشته باشی میتونی اینجا بمونی و چشاتو با تماشای این همه طلا نوازش بدی. موقعش که شد صدات میکنن. اون که رفت هانس از یه گنج خونه به جای دیگه میرفت و گاهی هم سعی می کرد ذره ای از شمشه طلا رو بکنه. اما هرگز نتونست. پس از مدتی گشت زدن تو اتاقا میزبانش برگشت. اما ظاهرش به قدری عوض شده بود که هانس باورش نمیشد اون واقعا خودش باشه. لباسای ابریشمی اون بسیار برراق بودن و بنده و حاشیه دوزیایی از طلا داشتن کمربندی طلایی به کمر داشت که سنگای قیمتی روی اون مثل ستاره های یه شب زمستونی می درخشیدن. به جای چوب دست اسای طلاکاری ظریفی تو دست داشت. سرور همه گنجا در رو قفل کرد و کلیدار را تو جیب گذاشت بعد هانسو به اتاق دیگه ای برد که شامو توی اون آماده کرده بودن میز و سندلیا ای و ظرفا و بشقابا از طلای ناب بودن. همین که پشت میز نشستن، یک دوجین خدمتکار ریزندام از اونا پذیرایی کردند. اونا به قدری سری کارشون انجام دادن که هانس باورش نمی بال ندارن. چون قدشون به میز نمی بیشتر اوقات مجبور شدن که بپرن و لیلی کنند تا دستشون به ظرفا برسه. هر چیزی برای هانس تازگی داشت و اگرچه گیج و بود ولی سر کیف اومده بود. بعد مردی که تاج زرین به سر داشت چیزای زیادی براش تعریف کرد که قبلا نشنیده بود. اون مرد گفت بین کریسمس و سال نو با گشت زدن تو سر و سر دنیا اعمال آدما رو نظاره می‌کنم، و چیزی به داشتهها اما تا اونجا که دیدم و شنیدم، نمیتونم به خوبی دربارشون سخن بگم. بیشتر عمر انسان به دعوا و شکایت از یکدیگر دیگر میگذره. در حالی که هیچ یک فکر نمیکنه که خودشم گناهکاره و خطا میکنه. هانس سعی کرد حقیقت پنهان در درون این سخنان رو انکار کنه. اما از احتش بر و سکوت کرد. و اصلا حواسش نبود که دوستش چی میگفت. بعد در همون صندلی که نشسته بود خوابش برد و اصلا نفهمید که چه اتفاقی روی میداد. رویاهای عجیب تو خواب به سراغش اومدن. اون شمشای طلا رو میدید که پیوسته جلوی چشمش جلوگری میکرد. تو بیداری احساس می کرد که از هر زمان دیگه نیرومندتر شده و میتونست، دو شمش خیلی راحت برداره. این کارو چندین بار انجام داد تا اینکه از توانش کاسته شد و تقریبا بیننفسس نقش زمین شد. بعد صداهای شادمانه شنید و ترانه های آهنگرا در حالی که تو کوره ها میدمیدند به گوشش خورد. حتی اسم کرد که جرقه های درخشان آتیشو در برابر چشماش میدید. خودشو که شقص داد، به آرومی بیدار شد و این بار، تو جنگل سبز بود و به جای آتیش جهان زیرین پرتوهای خورشید به سر و روش میتابید. از جا برخاست و تو فکر بود که چرا احساس عجیبی داره. بالاخره حواسش سر جا اومد و در حالی که چیزای عجیبی و که دیده بود به یاد میاورد سعی کرد اونا رو با اتفاقاتی که افتاده بود وفق بده و سازگار کنه. اونقدر فکر کرد که تقریباً داشت دیوونه میشد. سرانجام سعی کرد باور کنه که شبی بین کریسمس و سالنا غریبه یا تو جنگل دیده و تمام شب و کنار آتیشی بزرگ همراه اون به خواب رفته. روز بعد با هم غذا خوردن و بیش از اندازه خودشون نوشیدن. خلاصه دو روز تمام همراه مردی غریبه به شادی و خوشی گذروند اما حالا با درخشش کامل تابستون اونچه را به خود قبولونده بود نمی پذیرفت و احساس میکرد که آلت دست ترفندای جادویی شده. نزدیک اون زیر تابش خورشید، تهمونده ی آتشی خاموش دیده میشد. وقتی به اون نزدیک شد دید اونچه فکر میکرد خاکستر باشه در واقع خاکه ظریف زریف نقره است. چوبای نیمسوزم تلا بودم. آه! با خود اندیشید که چقدر خوشبخته. اما از کجا کیسه بیاره تا اون گنج و جمع کنه و پیش از اون که کسی به سراغش بره اونو به خونه ببره. احتیاج مادر اختراعه. هانس پوستینو از تن بیرون آورد. خاکسترای نقره رو با دقت جمع کرد. چوبای نیمسوخته رو هم جمع کرد و توی پوستین ریخت. بعد با کمربندش سر پوستینو که حالا به کیسه تبدیل شده بود محکم بست. به طوری که چیزی زمین نمیریخت در واقع خیلی هم سنگی نبود. هرچند به تصور خودش سبوک نمی اومد. آهسته به راه افتاد تا جایی امن برای پنهان کردن اونا پیدا کنه. به این ترتیب هانس ناگهان پول دار شد. اون به قدر کافی پول داشت و میتونست زمین کشاورزی بخره اما چون آدم محتاطی بود سرانجام تصمیم گرفت که از روستای خودش بره و جایی دور دست گوشه ای از سرزمین خودش به زندگی ادامه بده جای مورد نظرشو بدون معطلی پیدا کرد اون لازم بود خریداری کرد و با این حال بازم مقدار زیادی پول براش موند پس از اینکه سر سر سامون یافت با دختری زیبا که همون نزدیکی زندگی میکرد، پیوند زن و بست. است. اونا صاحب فرزندانی شدند. اون در بستر مرگ داستان سربر جهان رو برای فرزندانش تعریف کرد و گفت که چگونه به هانسه ثروتمند تبدیل شده بود. سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها